دیویب چنگالی را که کمی قبل روی میز گذاشته بود دوباره برداشت و انگار که چیز جالب توجهی پیدا کرده باشد شروع کرد به بازی کردن و چرخاندنش. یعنی از حرفهایی که الان زدی باید به این نتیجه برسم که با مردی که دوستش داشته ای ازدواج نکرده نه عزیزم. البته که منظورم این نبود دیوید که هنوز داشت با چنگال حرف میزد پرسید پس منظورت چی بود؟ من که موقع ازدواج گمان میکردم عاشقم هستی الا گفت عاشق بودم اما نتوانست جلوی خودش را بگیرد و اضافه نکند آن وقتها عاشق بودم خیلی خوب آن وقت از کی عاشق بودن را ول کردی الا با چشمانی پر از شگفتی به شوهرش نگاه کرد مثل آدمهایی که توی عمرشان عکس خودشان را توی آینه ندیده‌اند و یک دفعه آینه را جلوه صورتشان می‌گیری و آنها از حیرت خشکشان میزند، او هم انگار که با واقعیتی غیرمنتظره رو در رو شده باشد ماتش برد. راستی چند وقت است شوهرش را دوست ندارد. کدام آستانه؟ کدام نقطه عطف؟ کدام میلاد؟ انگار میخواست چیزی بگوید. کلمه پیدا نکرد. خوشگش زد. در اصل زن و شوهر داشتند کاری را میکردند که در آن حرفه شده بودند. خود را به نفهمیدم زدن. روزها در نوعی بیخیای میگذشت. نوعی چشمپوشی از همه چیز. زمان در آن بستر آشنا و محتومش سوار بر روزمرگیها سرد و بیروح. کاهلانه و علصویه جریان داشت الا یک دفعه زد زیر گریه نتوانست جلوه خودش را بگیرد دیوید بی رویش را برگرداند با خودش می زنها اشکشان دم مشکشان است به خصوص نفرت داشت از این که زن خودش را در حال گریه ببیند برای همین الا وقتی کنار شوهرش بود به این راحتی ها گریه نمی کرد اما اتفاق آن روز همه به نوعی غیرعادی بودند به هر حال درست در همان لحظه تلفن زنگ زد و هر دوشان را از شر آن لحظه های زجرآور نجات داد دیوید گوشی تلفن را برداشت الو، بله خودش همینجاست. لطفا یک دقیقه صبر کنید. الا گوشی را که به طرفش گرفته شده بود گرفت و خودش را جمع جور کرد و تا آنجا که می توانست سعی کرد خوشحال و خندان جواب تلفن را بدهد. الو، بفرمایید. صدای زن جوانی از پشت گوشی آمد. سلام الا منم میشله از دفتر انتشاراتی زنگ میزنم. کارها چطور پیش میرود؟ با خودم گفتم زنگ بزنم بپرسم کار رمانی را که داده بودیم شروع کرده ای یا نه البته ویراستارمان هم پرسیده بود خلاصه برای همین زنگ زدم این استیوه ما تو این زمینه ها خیلی دقیق و وسواسی است گفتم خبر داشته باشی الا گفت آها خوب کاری کردی زنگ زدی اما از درون آهی بی کشید اولین وظیفه‌ای که در این انتشاراتی مشهور به او که دستیار دستیار ویراستار بود محول کرده بودند خواندن رمان نویسندهای ناشناس بود اول باید کتاب را میخواند و بعد گزارشی مفصل دربارهاش مینوشت الا دروغی پراند به استیو بگو اصلا نگران نباشد کار را شروع کردم قصد نداشت در اولین کارش با دختری مثل میشله سر و کله بزند که فکر و ذکری جز کارش نداشت نه بابا راست میگویی؟ خب رمانش چطور بود؟ الا به تتپته افتاد لحظه ای نفهمی چه بایست بگوید آخر در مورد متنی که دستش بود هیچ چیز نمیدانست تنها چیزی که میدانست این بود که رمانی تاریخی است این را هم میدانست که موضوعش درباره مولوی، شاعر مشهور و دوست صوفیه‌ش شمس تپریزی است. همین و بس. برای اینکه قضیه را به شوخی برگزار کند و موضوع را درس بگیرد گفت: چیز یعنی والا راستش کتابش خیلی عرفانی است. اما میشله کسی نبود که از شوخی سر در بیاورد. خیلی جدی گفت: «هم ببین: به نظرم بهتر است برای این کار برنامه ریسی بکنید. آماده کردن گزارش همچون رمان سنگینی ممکن است از آن چه فکرش را می کنی بیشتر طول بکشد. این را گفت و صدایش در تلفن محو شد. صدای میشله لحظه ای رفت و آمد آمد و رفت. در این میان الله سعی کرد توی ذهنش مجسم کند، زن جوان آن طرف خط در آن لحظه چه کارها دارد می کند. خب، امکان داشت از یک طرف به کسانی دستورهایی بدهد و از طرف دیگر به نوشته ای انتقادی که در مورد یکی از نویسندگان مؤسسه در نیویورکر چاپ شده نگاهی بیندازد. همانطور که دارد گزارش های فروش را بررسی می کند با مونیتور ور برود تا ببیند ایمیل جدیدی آمده یا نه. یا وقتی تون تون ساندویج تون می‌خورد، خورد لغمه توی دهانش را با قهوه سرد نرم کند. حتما در این اصنا داشت ماهرانه پنج شش کار را یکجا انجام میداد میشله یک دقیقه بعد که دوباره صدایش شنیده شد پرسید الا آنجایی مگر نه بله هنوز اینجا آها ببخشید اینجا آنقدر کار روی سرم ریخته که دارم دیوانه می شدم. مجبورم قطع بکنم اما یادت باشد برای تحویل کار سه هفته وقت داری بگذار ببینم امروز هفدهم مه است. یعنی گزارش حد اکثر باید تا دهم ژوئن به دستم برسد. همینطور است، مگر نه؟ الا تا آنجا که می توانست لحن صدایش را جدی کرد و گفت نگران نباش، سر موقع تحویل میدهم اما چیزی که احساسات واقعی الا را لو میداد، کلمههایی نبود که به کار میبرد. سکوت ها و وقفه میان حرفهایش بود. راستش حتی مطمئن نبود که دلش میخواهد رمانی را که به او دادهاند بخواند یا نه. اولش این وظیفه را با علاقه زیاد پذیرفته بود. اولین خواننده رمان چاپ نشده نویسنده ناشناس بودند به نظرش مثل بازی هیجان انگیز رسیده بود در سرنوشت رمان و نویسندهاش نقشی هرچند کوچک بازی میکرد اما الان احساسش فرق کرده بود درست نمیدانست که میخواهد برای چنین متنی وقت بگذارد یا نه موضوع رمان هیچ ربطی به زندگی خودش نداشت تصوف، ارفان زمانش را بگو، قرن سیزدهم هفت صد هشت صد سال پیش مکانش را هم که اصلا نگو، آنور دنیا آسیای صغیر. او که نمی توانست جاهایی را که داستان در آنها میگذشت حتی توی نقشه پیدا کند چطور می توانست فکرش را متمرکز کند و آن همه نوشته را بخاند چطور می توانست هوش و حواسش را بدهد به موضوعی که هیچ چیز در بارش نمیدانست؟ در این میان میشل حس کرده بود الا دو دل است برای همین در تنگنایش گذاشت. چی شده؟ نکنه مسئله پیش آمده؟ و چون فوراً از طرف مقابل جوابی نیامد اضافه کرد، الا می توانی به من اعتماد کنی. اگر چیزی هست که نمیتوانی هزمش کنی، بهتر است که توی این مرحله بدانم. باید اعتراف کنم این روزها حواسم زیاد سر جایش نیست. به نظرم میرسد که نمیتوانم ذهنم را روی رمانی تاریخی متمرکز کنم. سو اتفاهم نشود زندگانی مولانا برایم جالب است اما توی این قبیل موضوع ها آنقدر ناشییم که نگو و نپرس یعنی با خودم میگویم بهتر نیست رمان دیگری برای خواندن بگیرم رمانی که بتوانم راحتتر با آن ارتباط برقرار کنم میشله گفت: آه لااقل اقل تو یکی این حرف را نزن این چه برخورد غیر است اما حیف که توی شغل ما تقریبا همه افراد جدید این اشتباه را میکنند تو فکر میکنی آدم رمانی را که با موضوعش آشناست راحت تر میخواند هم چه قاعده ای وجود ندارد مگر اینطوری میشود ویراستاری کرد. نکند منظورت این است که چون الان در ماساچوست سال 2008 زندگی می کنیم، فقط باید رامانهایی را برای چاپ آماده بکنیم که داستانشان در این زمان و در این حوالی میگذرد. الا حالت دفاعی به خود گرفت. نه، البته که همچی منظوری نداشتم و همین که حالت دفاعی گرفت متوجه شد آن روز پشت سر هم حس کرده که منظورش را خوب نفهمیدند و مدام مجبور شده از خودش دفاع کند از بالای شانهش دزدکی نگاهی به شوهرش انداخت یعنی او هم اینطور فکر می کرد. اما حالت چهره دیوی مثل دری قفل و مهرومون شده بود چنان رازالود که نتوانست به گشایدش والا بیشتر وقتها مجبور میشویم کتابهایی را بخوانیم که کوچکترین ربطی به زندگی خودمان ندارند کار ما اینطوری است بهت گفته باشم ببین مثلا این هفته کتاب زن ایرانی را برای چاپ آماده کردم که خاطرات سفرش را نوشته بود. پس باید چه کار می یعنی باید می گفتم چون این زن ایرانی است کتابش را بردارد ببرد پیش ویراستاری ایرانی؟ الا منمن کنان انگار که موقع دزدی مشش را گرفته باشند با حالتی درمانده گفت نه البته که نه این را نمی‌خواستم بگویم علاوه بر اینها مگر نیروی ادبیات نتیجه این نیست که میان سرزمین‌های دور بین فرهنگ‌های متفاوت پل میزند. مگر ادبیات آدم‌ها را به هم پیوند نمی‌زند البته که همینطور است تو را به خدا حرف‌هایم را فراموش کن گزارش پیش از موعد روی میزت خواهد بود. در آن لحظه از میشله متنفر شد که مثل موجودی دست و پاچلوفتی با او رفتار کرده بود. اما در اصل از خودش متنفر شد. چون خودش به این زن جوان جسارت و فرصت داده بود اینطور مثل عقل کلها با او حرف بزند. میشله گفت آها، باری کلا، همین با اسم جزم ادامه بده. سوء تفاهم نشود. اما به نظرم این وسط واقعیتی وجود دارد که نباید فراموش کنی. در این لحظه توی فهرست حداقل 20 نفر هستند که میخواهند جای تو باشند و این کار را بگیرند. بیشترشان هم نصف سن و سال دارند. این گوشه از ذهنت بماند. آن وقت ببین ذوق و شوق کار کردن چطور به سراغت میآید آید. الا سرانجام تلفن را که قطع کرد با شوهرش چشم در چشم شد. دیوید خیلی سرسنگین به نظر میآمد معلوم بود منتظر از صحبت را از آنجا که قطع شده بود ادامه بدهم. اما الا دیگر دل و دماغش را نداشت که بنشیند و افسوس آینده دختر بزرگشان را بخورد. البته انگار از همان اول هم مسئله اصلی که زن و شوهر افسوسش را میخوردند، این نبود. چند دقیقه بعد، الا تک و تنها در آلاچیق توی حیات، روی سندلی ننوعیش نشسته بود قروبی سرخ رنگ به سرعت داشت به آسمان نورتمتون نزدیک می شد. آسمان به نظرش چنان نزدیک می رسید که گویی اگر دستش را دراز می کرد می توانست بگیردش بعد از این همه سر و صدا و جر و بحث لابد آنقدر حالش بد شده بود که حالا میخواست به مغزش استراحت بدهد. نه پرداخت های کارت اعتباریش نه سوء تغذیه و رژیم های افراطی افراتی ارلی نه درس نخاندن ایوی نه امه استر و آن کیک های مزخرف مزاییکیش نه از پا افتادن سایه نه برنامه‌های غیرمنتظره جانت برای شوهر کردن، نه سال‌ها خیانت شوهرش به او، تک تک مسائلی را که معمولاً ذهنش را درگیر می‌کردند، از پس گردنشان گرفت، توی های کوچولو گذاشت و به در هر کدامشان یک قفل زد. الا در این حالت روحی متنی را که از طرف انتشارات آر به او داده بودند به دست گرفت و سبوک سنگینش کرد کاغذها را با سلیقه به هم دوخته بودند و توی پوشهای شفاف گذاشته بودند عنوان کتاب در اولین صفحه با مرکب نیلی رنگ نوشته شده بود ملت عشق به الا گفته بودند کسی چیزی درباره نویسنده نمیدانند. فقط این را گفته بودند که مردی اسرارآمیز و ساکن هلند است. اسمش این زهاراست. با هیچ آژانس ادبی قرارداد ندارد. دست رمانش را که حدود 300 صفحه می شود از آمستردام پست کرده. یک کارت پستال هم کنارش سنجاخ کرده روی کارت پستال عکس مزرعه‌های های گل لاله بود که زیبایی گل های صورتی زرد و کبودش چشم را خیره میکرد پشت کارت هم یادداشتی بود که با خطی ظریف نوشته شده بود ویراستار محترم این سطور را از آمستردام برایتان میفرستم. اما داستانی که پیوست کرده‌ام در آناتولی می‌گذرد در قونیه قرن سیزدهم. با این حال از صمیم قلب باور دارم که این داستان از زمان و از مکان و از اختلاف‌های فرهنگی رهاست جهان شمول است امیدوارم فرصت بیابید این رمان تاریخی عرفانی را بخوانید که دستمایش دوستی بیمثال جلال دین مولوی شاعر اعظم عالم اسلام با شمس تبریزی درویش گلندری است با این آرزو ملت عشق را به نشانه مؤسسه تان می فرستم. مرامتان عشق اشقتان باقی باد با احترام عزیز زه زاهارا الا حد صد خود این کارت پستال حسه کنجکاوی ویراستار انتشارات را تحریک کرده باشد اما استیو سرش خیلی شلوغ بود نمی وقتش را صرف مطالعه رمان نویسند تازه کار بکند برای همین لابد بسته ای را که رسیده بوده به دستیارش میشله داده. میشله هریس هم که وقتش به نظر خودش ارزشمندتر از بقیه است رمان را طوری که کسی نفهمد برای دستیار جدیدش فرستاده بود. این طوری ملت عشق دست به دست گشته بود و آخر سر روی دست اللا مانده بود. دیگر وظیفه او بود که کتاب را بخواند و در بارش گزارشی مفصل بنویسد. اللا از کجا میتوانست بفهمد که این رمان رومانی سردستی نیست. از کجا میتوانست بفهمد که این کتاب به کلی جریان زندگیش را عوض می کند. از کجا خبر داشت که موقع خواندن ملت عشق زندگی خودش هم از نو سطر به سطر نوشته می شود. صفحه اول را باز کرد. در آنجا به بعضی اطلاعات درباره نویسنده برخورد. این زه زهارا آن وقتهایی که دنیا را نمی گردد با کتابهایش، دوستانش، گربههایش و لاکپشتهایش در آمستردام زندگی میکنند. ملت عشق اولین و احتمالاً آخرین رمان اوست. نویسنده که رغبت چندانی به رمان نویس شدن ندارد این کتاب را صرفاً به دلیل احترام و علاقی که به مولوی و به خورشید محبوب او شمس تبریزی دارد قلمی کرده است. نگاه الا به صفحه بعدی افتاد و همان موقع جمله آشنا در صفحه پیدا کرد. زیرا به رقم آن که بعضی ها خلافش را ادعا می کنند، عشق حس خوشایندی نیست که امروز هست و فردانیست دهان الله از تعجب باز ماند اما آخر این جمله جمله او بود یعنی دقیقا همان جمله ای بود که چند دقیقه قبل توی آشپزخانه به دخترش گفته بود لحظه ای دوچار شک احمقانه ای شد انگار در ای از کائنات چشمی رازآلود میپاییدش درونش لرزید در اصل قرن بیست ویکم چندان فرقی با قرن سیزدهم ندارد هر دوی این قرنها را در کتابهای تاریخ اینطور ثبت خواهند کرد قرن اختلافهای دینی که مثل و مانندش دیده نشده مبارزه های فرهنگی پیش ها و سوء تفاهم ها بی, بی صباتی و خشونتی که همه جا پخش می شود و نیز نگرانی که دیگری منشع آن است روزگار هر در چون این روزگاری عشق صرفاً کلمهی لطیف نیست، خود به تنهایی قطب نماست. در دنیایی که هیچ کس فرصت پرداختن به ذرایف عشق را ندارد، ملت عشق اهمیت بیشتری یابد بادی سرد به طرف الاوزی برگهای خشک داخل آلاچیق به هوا بلند شد و در اطراف چرخید. خورشید در افق غرب پنهان شد. شادی و گرمای آسمان فروکش کرد. چون عشق جوهره و هدف اصلی زندگی است. چنان که مولانا به ما یادآوری کرده روزی میرسد که عشق به چابکی گریبان همه را میگیرد حتی گریبان آنهایی را که از او فراری‌اند و حتی گریبان کسانی را که از کلمه رمانتیک مثل نوعی گناه استفاده میکنند. چشم‌های الا به صفحه میخکوب شده بود لب پایینش کمی کت شده، خودش هم خم شده و همانطور مانده بود. کسی که اینجا درباره صحبت می خود خودش بود. اگر نوشته شده بود، حتی گریبان خانم خانداری به اسم الا روبینشتاین را که سه بچه دارد و نزدیکی های بستون زندگی می کند، همینقدر تعجب می کرد. نه بیشتر صدایی از درونش گفت پوشه را چناری بگذارد فوراً برود داخل خانه به میشله تلفن بکند و بگوید که این کتاب عجیب و غریب را نمیخواند. اما زیاد دودل دلنما نفسی عمیق کشید و صفحه را ورق زد و به این ترتیب در یکی از شبهای ملایم ماهمه خواندن رمان نویسنده ای را شروع کرد که حتی اسمش را نشنیده بود و دنیایی را تعریف می‌کرد که الا هیچ چیز در بارش